بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و عدب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر الله تعالی فرجه و شریف در خدمتتون هستیم با برنامه مهدیار با مباحث پیرامون مهدویت این برنامه مثل چند برنامه گذشته در خدمت استاد و کارشانس محترم برنامه حاجه های حجازی هستیم ازشون درخواست میکنم که عرض سلام خدمت شما داشته باشند در ادامه برنامه در خدمت شما بینندگان عزیز و استاد و کارشناس محترم برنامه خواهم بود. اجازه و السلام علیکم و رحمت الله و و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذي جعل كمال دينه و تمام نعمته بولایه مولانا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و ائمه المعصومین و الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدی لولا ان الله خدای منجیب قادر من را, را سوگن می‌دهیم به حق امام عسله صلوات و سلام که ان این برنامه برنامه مفید و مناسبی باشد برای ما و شهروندان بینندگان عزیز و خصوصا در این لحظات که لحظات نزول باران و رحمت الهی است خدای متعال را می‌خونیم که ان با مجد و اذن ظهور امام عسله صلوات و سلام رفعه هم موقعا مگرفتاری به فرمایت از شیعیان و لحظه لحظه استجاوت دعاست، این لحظه، بهترین لحظه ایست که بگوییم اللهم عجیل والی کرده خیلی ممنون و متشکر، برنامه مهدیار اطلاع دارید بینندگان عزیز که ما را همراهی کنند و پیگیری میکنند برنامه های شبکه جهانی حضرت ولی اسرا اختصاص داره به مباحث پیرامون مهدویت چند ای که از محضر حاجه های حجازی استفاده میکنیم در این برنامه موضوع بحثی که مطرح میکنند وظایف شیعیان در عصر قیبت هست مباحثی که مطرح کردن تا الان نه مورد رو طبق دسته بندی هایی که خودشون کردن و تو برنامه دارن خدمتون تقدیم میکنن نه موردش رو ما تو برنامه خدمتون تقدیم کردیم آخرین موردی که هفته گذشته عرض کردیم خدمتون عنوانش بود احیا امر اهل بیت و انغاز ایتام شیعه یه خلاصه ای از همین موضوع نهمی که خدمتون عرض کردم خواهش میکنم که حاجبا هجازی بفرماین برای یادآوری مجدد خدمتون و عرضم به خدمتتون که و مباحث جدید رو هم مطرح کنند حاجبا بفرماید در خدمتی ارز شد جلسه تقریبا سه جلسه ما در خدمت دوستان بودیم در بحثه وظائف شیعه در عصر قیوت چند عنوان رو از روایات ما استخراج کردیم که به صراحت درباره وظایف شیعه در دوران قیوت صحبت میکنند من با اجازه شما فهرست رو فقط باز اشاره میکنم که یاداوری بشه برای دوستان عنوان اول تمسکوا بالامر الاول تمسک به امر اول عنوان دوم احبب من کن تتهب دوستو سه با کسانی که انسان باهاشون دوست بود عنوان سوم معرفت امام اعرف امامک معرفت امامت رو بالا ببر اگر معرفت داشتی فلا یا هم مکتقد دم هاد الامر او ظهور رو درک بکن یا نه عنوان چهارم این که گفتیم ظهور همگانی و آشکار است و همراهی نکردن با دعاوی که ادعای قرب ظهور میکنه عنوان پنجم تسلیم امر الهی بودن و این که غیبت برای مؤمن نعمتی است و برای کفار و منافقین نقمت است عنوانششون برایت از اهل بدعت و دروغین که در زیره عیمه خصوصا امام حادی علیه السلام ارز کردیم عنوان هفتم عدم توقیت و تکذیب مندعیان توقیت و تعیین کنندگان وقت عنوان هشتم عدم استعجال و دوری از مستعجلین کسان که استعجال میکنن در امر زهور از وقت و عنوان نهم احیای امر اهل بیت و انقاض ایتام آل محمد که معناش این بود به صورت خلاصه که ما وظیفه داریم از وظایفی که در دوران شیعه گردن همه مؤمنین و شیعان هست حالا هر کسی به اقتضاع علم خودش و امکانات خودش اما هممون وظیفه داریم که کمک بکنیم برای نجات شیعانی که دوچار شبهه شده اند و شیعانی که معرفت با پاینی دارن نسبت به امام ازر درک پاین خدایی نکرده دارند. اینها رو کمک بکنیم به بالا بردن معرفت اینها و نجات ایتام عالم محمد که از کردیم ایتام یتیم در روایت اهل بیت به کسی گفته شده است که امام او غائب است. و دسترسی به امامش ندارد. او را یتیم نامیدن. تلاش کنیم برای این که ایتام عالم محمد رو نجات بدهیم از چنگ نواسب و ابلیس و مردای ابلیس. این نه تا عنوانی بود که جلسات از قبل عرض کردیم. اما عنوان دهمی ده که امشب انشالله و به اذن امام عسلی سلام واردش میشیم عنوان انتظار فردا. آماز در روایات یکی از وظائفشیه در اسر قیبت جده از اون مواردی که حالا ارز کردیم بعدیش سلوی بود بعدیش اثباتی بود عنوانی رو داریم به نام انتظار فرنش باید منتظر باشید شما و وظائف و حالت حقیقی یک منتظر رو داشته باشید حالا من روایت رو میخونم واضح میکنم روایت ابی خالد کابولی خب ابی خالد کابولی میدونی دیگه از اصحاب خاصه امام سجاد علیه السلام بود کسی بود که جالب در روایت داریم که همون اتفاقی که مثل همون اتفاقی که بعد از نبی اکرم افتاد و ارتد ناس بعد رسول الله الا ثلاث او اربعه بعد از سید الشهدام همین اتفاق افتاد میفرمارد که ارتد ناس بعد ابي عبد الله حسين عليه الصلاه و السلام الا ثلاث او اربعه که یکیشون ابي خالد کابلی است یعنی همه بعد از سید الشهدام مرتد شدند همون اتفاقی که بعد از پیغمبر افتاد چرا؟ چون کسی دنبال معرفت امام زمانش نبود این البته کاری به آشوره نداره جدا از کسانی که نصرت نکردن حضرت تو در آشوره بخواد بفرماید که بعد سید و, و زمان امامت امام سجاد کسی دنبال معرفت امامش نبود جز این چهار نفر ابی خالد کابولیست و بن ام قویلست و جابر بن عبدالله انصاری و یکی دیگر باز از اصحاب امام سجاد رسولت و خب ابی خالد کاوری میفرماید که از امام سجاد نقل می‌کند که فرمود که حضرت مفصل درباره امام عصر ائمه ائمه رو به اسم نام بود دهواز امام رو رسیدن به امام است فرمودن غیبتی دارد این امام ثانی عشر از ما اهل بیت بعد فرمودند که یا ابا خالد این اهل زمان غیبتهی القائلین به امامتهی و المنتظرین لظهوره اهل زمان غیبت او که قائل به امامتشن و منتظر ظهورش هستند اول ومن اهل کل زمان از اهل تمام زمان ها افضل با همین صفت انتظار خب عقیده آمده از قائلین به ماش اما چی منتظرند لان الله تبارک و تعالی اعطاهم من العقول والافهام والمعرفه ما صارت به الغیبه عندهم منزلت المشاهده خدای عقولی و فهمی به اینها داده و معرفت به اینها داده که غیبت در نزد اینها مثل مشاهده است چقدر عجیبه باید روی ریبات واقعا فکر بکنید خدا رو میگن چقدر باید کلمه کلمه روباتحلت حکمت توشه خدا به اینها معرفتی داره که غیبت و مشاهده برایشون فرق نداره در دوران غیبت هم همون ایمانی که اگر کسانی در دوران مشاهده, مشاهده قرار بود داشته باشن داشتن در دوران غیبت هم همین ایمان حالا یه ای تعریزی بزنن قا اوقاات بحث نقل میکنن میگن آقا مثلا شما شییان حالا این حرف حرف ها زیاد شده میکن اقا شما شی شیعان... این چنین کردید آن چنان کردید نصرت نکردید بعد از پیغمبر میگیم اول اونایی که نصرت نکردن شیعه نبودن که بحث مفصل تاریخی داره اون کسانی که مقابل سید الشهدا ایستادند دقیقاً شیعه بنی امیه بودند آل ابی سفیه صوفی... شیعه آل ابی بودند و کسانی بودند که حالا نمیخوام بگیم عنوان روشو میذاریم بالاخره به خلافت خلیفه اول و دوم و سوم بعد از بر بودند و بعدش هم حالا عموما به خلافت ثانی و معاویه بودند و اگر کسانی هم در کوفه بودند که نصرت نکردند سیدالشهدا رو و قائل به خلافت امیرالمؤمنین بودند که حالا بحث مفصلیه میدون کسانی که در جنگ سفین جنگیدند در رکاب حضرت جزو اعده معدودی که حالا بعضا به شورزه خمیس معروف شده است علت این که میگفتن خمیس به خاطر اینکه لشکر پنج جهت داشت میمنه و میسره و عقبه و کل اینا, گفتن خمیس. اینا قائل به امامت علا اهد الغدیر بودن یعنی به اهد الغدیر امامت امام اصر امام امیر المؤمنین رو قبول داشتن اما اموملشگر امیر المؤمنان این چنی نبودن که شیعه با عنوان مصطلح امروزی باشن نه اینها در تقابل بین معاویه و امیر المؤمنان انتخاب کردن امیر المؤمنان لذا خب میگفتن خلیفه اول مشمردان خلیفه دوم خلیفه سوم خلیفه چهارم ماکیه معاویه است یا امیرالمومنین میگفتن علی بن ابی در این تقابل امیرالمومنین رضا میدونید دیگه حضرت وقتی اومدن اون قضیه صلات تراوی و حضرت من کردن گفتن که وا عمره وا سنت عمره قضیعت علینا شهر رمضان ماه رمضان اون خراب کرد یا علی نذاشت ما صلات تراوی بخونیم و یه ولوله ای شد در لشکر حضرت خب حال می‌خوایم بگیم که اینها که نصرت نکردن اهل رو اینا شیعه نبودن هر کس خزلان که از کسی روشهداروش شیعه نیست. شیعه دیگه چه اصطلاحی دارد چه تعریفی دارد تعریف شیعه به عمل کرده. به بله به بله، عمل کردش تعریفش نسبت امام از همراهی با امام است. بعضی ممکن است کسی مثلا در یک زمانی که اون که مؤمن به پیغمبر بودن اما بعداً به ارتداد رفتن ممکن است یه کسی یه زمانی هم مثلا بوده. اما نکته مهم این است که بعضی‌ها میگن خب شما از کجا می‌دونید که امروز هم نصرت میکنید امام زمان رو اگر ظهور بکنند. شما هم مثلا جلوی حضرت میسید. بگیم آقا موقف کسی که میخواهد بداند. این, این روایت روایتم هستا. روایت هم سریح داریم به همین معنا موقف کسی که میخواهد بداند اگر حضرت ظهور کردن در دوران ظهور. آیا من نصرت میکنم حضرت رو. یا خدایی نکرد در زمره حضرت حضرتم یا خدای نکرده الله اعدای حضرت میخواد بدون این رو از کجا بفهم ببینیم موزش در دوران غیبت چیه ؟ خیلی راحت. اگر در دوران غیبت جز به همین مساطق روایات بود اونجا هم همین است. حالا ظهور رو درک بکنه یا. نه؟ اینجا با فهم موقفش در دوران غیبت و عملکردش در دوران غبت میتونه بفهمه که بعد من در دوران ظهورم هم همین کارو میکرد. ظهور مضوعیت ندارد چه کسانی چه افرادی که این هم رادی که پیغمبر و رو درک کردن اما نصرت نکردن. حالا باز چون به خاطرم آمد همین انوارو این, این اطباء احمد اسماعیل همبوشیه بصره خیلی به کار میبرن حالا چون مناسبت هم موضوع برنامه نقل مدعیان درو هم هست خیلی رو به کار میبرن و توهین میکنن به جمعیشی شیعیان اولا که خب قائلن همه شیعیان از عصر پیغمبر تا به امروز همه مرتدن چرا عقیدهشون اینه که 13 امام داریم ما 24 امام داریم همه شیعیان 12 امامیان دیگه لای ازیدو و لایان پس همه شیعیان مرتدن در نزد این فرقه اما نکته دیگر این است که تصریح میکنن آقا شما شیعیان دشمنان امام زمانی جلو امام زمان می ایستید حالا شما اومدید جلو امام زمان دکان باز کردید که از این مدعی رو علام کردید هر چه عنوان و منصب برای امام اص بود از حضرت زائل کردید برای مدعی قائل شدید قائل به وفات امام اص شدی سریحتا صراحتن اذا از این اینها میبینید که سراحتا اتبارش نمیدونن علی احمد صریحا ادعا میکنند که امام از دنیا رفتن وفات کردن و حجیت دیگه در روی زمین ندارن نه الان از ابتدای دوران غیبت صغرا خب اما میگن که ولی بله شما اینچنین دوانچنانی و تکفیر میکنن و توهین میکنن من یادم هست که از سران این فرقه که خب تقریبا میشه گفت معروف ترین اشخاصی بود که در این فرقه بودش و اینها چون میخوام نقل قول کنم طوری نیست اسمشم ببرم و هر جام کلاس بود، کلاسی بوده یا اجلاس هایی که بوده من خیلی اوقات گفتم چون شاهد مهمیه و بزرگترین سرکرده این فرقه بود که حالا فعلا در زندان هست به نام آقای فتحیه خب ما چندین سال قبل تقریبا هیست سال نه سال قبل که یه مناظره با ایشون اول تو خونه خودش اتفاقی شد یکی از رفقا به ما خبر داد نمیخوام واردش بشن رفتیم خوشی بحثی کردیم چند نفر از دوستان خودش رو جمع کرده بود از طلب ها که اونها رو جذب بکنه. ما هم با هماهاهی با یکی از رفقاممون رفتیم منزلش. و اونجا دیگه خب بساتش به همریخ و همون سه چهار ساعتی که ما تو منزلش بودیم دیگه نتونست اون افرادی که میخواست جذب بکنه رو به قول خودش بتونه وارد این فرقه بکنه و بعدا خود اون رففقاشش مثلا یه گروهی تشکیل دادن و جلسه هفتگی میذاشتن دور هم برای اینکه مقابله کنن مثلا با این فرق. اما حالا عرضم اینه اون شب یه بحث مفصلی شد و بعد دیگه ما از خونش وقتی اومدیم بیرون بهش گفتم که تو داری خودت رو بیچاره می‌کنی خسارت دنیا و میشی می‌شی و من خیر خودت رو می‌خوام. گفت من حالا یه حرفی زد این حرف رو از ته دلش زد و واقعا با عقیده زد و بعدم برش کافشاری کرده چون حرف‌های شبیه این رو بارها و بارها ازش شنیده و من رو نقل می کنم چون خودش گفته است صراحتن و کار هم نکرده و شاهد هم که بودن امیر رفقاش مثلا آقای یکی از رفقای ما های جعفری بود یا آقای میزا بود های جعفر پیشه آقای میزا بود اینا بودن تو اون مجلس اینها خودشون بودن شاهد بودن همش گفت من آرزوم اینه این نکتش حرفم بود همه اینا رو گفتم برای این نکته گفت من آرزوم اینه و یک لحظه فقط به امید یک لحظه زندگی میکنه و اون این که ببینید؟ این ببینید ها چه میکنن با آدم به امید این لحظه که برم روی پشت موکب احمد اسماعیل حالا به قول خوری سید احمد الحسن بنشینم و زائران 40 کربلا رو با به برکبار ببندم من زندم به امید اون لحظه این حرفی بود که این آقا من به این امید این لحظه زندم آقای فتحیه صراحتن به خود من با شوری که رفقای خودش بودن این حرف رو زد یه حرف هم حرف جدید نیست که بگیم اقا نه این حرف خودش حال عصبی بوده فلان بوده نه این حرف عین حرف احمد مایل در بیاایی که داره بیاینی محرم اونجا تصریح میکنه تکفر میکنه یه رو و توهی میکنه, میکنه شما ای که شماهایی که قتل مام حسینی شماهایی که قتل اهل اییید شما ای که قتل و... امام زمان شما که دشمن و تصویر که نشون میدن تصویر زوار رو رو نشون میدن احمد اسمیل داره رو فحش میدهیمگه شما دشمن امام زمان شما دشمن چرا گفت چون همین هستند هستن کهجلوی خجت خدا که الان احمد مایل ایستادن. من به امید این لحظه زندم که بیام بکشم با دوشکا با اصله، با راه بار ببندم این ظائرای الوهیت. خب این عقیده این فرق است. حالا حرفمون این بود پس که اهل بیت علیه الصلاه و السلام به ما گفتن اگر این صفات رو داشتید اگر این ویژگی ها رو داشتید بدونید که شما جزو ناصر، ناصرین ما هستید در دوران غیبت هم همین کفایت می‌کنه براتون. خب اعطاه من العقول وغول به اونها دلیل که در دوران غیبت چیه مثل مشاهد است. و جعلهم که زمان الزمان مزلت المجاهدين در اون زمان مثل مجاهدین اینها رو قرار داده بین اهل رسول الله مجاهدین در پیشگاه پیامبر اکرم به سیفه بعد حضرت باز ادامه میدهند که بله اینها ویژگی های دیگری هم دارن که در زیل روایت دوستان میتونن مراجعه بکنند باز روایت دیگری در معنای حالا انتظار گفتیم اینجا حضرت میفرمایند که منتظرین این جایگاه رو دارند و افضل تمام زمان ها هستند حضرت می‌فرمایند که حالا در معنای انتظار می‌خوایم می بگیم حضرت می‌فرمایند که روایتی است از امام رضا علیه السلام مرحوم شیخ صدوق در عیون اخبار رضا میاره مأمون سالی از حضرت می‌کنه می کنه. که آقا این معنای محول ایمان رو برای من توضیح بده چه کسی محول محوال ایمان رو داره ایمان محض داره حضرت شروع می‌کنن توحید رو بهش میگن اعتقاداتش میگن بعد شروع می‌کنن ائمه رو نام می‌برند همین روایت که رو واقعا کفایت میکنم این همه قایه رو خودمون رو مجبوریم نمیخوام بگم که نباید تحجب از اون طرف ها با, با این همه تصریحات متعددهی که هست چطور مثلا یه کسی که سابقه تحصیل در حوزه داره اینا رو هم خونده یا مثلا ارزم به خدمت بالاخره آدم مذهبیه تو جلسات مذهبی بوده تو حیعت رفته مسجد رفته دیگه با این ای همه تصری ارزن به خدمتون که این حرف این تیپی رو باور بکنند بره. حالا علت یه سری علت, ها علت های نفسانی، یه سری علت های اخلاقی، یه سری علت های اجتماعی این هم قایی اوقات باید خیلی مؤثره، باید بهش پرداخته بشه و ما همیشه تو میدان بودیم به این رفق که قایی اوقات میان و بحث میکنیم گفتم این افرادی که جذب به این فرقه ها شدن گاهی وقتا ما باید واقعا باشین دوستانه حرف بزنیم. چون عموما علت جذبشون به فرقه‌ها علت علمی نیست چون اگر بحث علمی باشه بحث علمی واضح عموما علمی نیست سرخوردگی‌های خانوادگیه سرخوردگی‌های اجتماعی مشکلاتی که تو اجتماع تو جامعه می‌بینن بعضن حالا به هر عنوانی اینها باعث می‌شود که کلاً همه چیز رو کنار و منکر میشن و میخوان دنبال یه حبلی میگردن که بالاخره خودشون رو به اون متمسک کنن و مثلا خودش رو مجزا از بقیه نشون بدن دقت کردید اینها هستش همش این آقای که اسپورت هم خب ما اولین بار نشستم باهاش واقعا دوستانه حرف زدیم بعدش دیگه قبول نکرد ما سه جلسه یک سال بعدش که بهش گفتیم بیا مناظره اینا سه جلسه مناظره گذاشتیم مثلا وعده ای که گذاشتیم برای مناظره ده جلسه او از اول توافق شد سه جلسه مناظره هم برگزار شد دیگه بعد از جلسه سوم نیومدیش چون یعنی صریحا من دیگه ادامه نمیدم. راخشیت من دیگه نمیتونم مشکلی و وضا می بگم بحث بحث علمی نیست خودشون هم که میدان میدان علمی نیست برای اینها اما خب علت های دیگیری هم هست در میانه خب حضرت امام رضا علیه السلام 12 امام رو نام بردن فرمودن ایمان محض عقیده به این 12 امام یعنی چی یعنی آقا من دارم در مقام بیانم امام رضا علیه السلام در مقام بیانه الان میگم محض ایمان اینه دیگه حالا یمانی و خراسانی و این طرفی و اون طرفی اینا موضوعیاتی نزد در سر درست اینکه allerlei که بخواد ادعای امام 12 امو 24 امو غیرو غیرم بگه از این طرف نه زیاده نه از اون طرف هم نقصان داشته باشه بله دیگه هم و شیشه امامی, شیش امامی و همش امامی. محزل ایمان اینه 12 ما خب بعد حضرت رسیدن به دوران غیبت و ویژگی های دوران غیبت امام عصر رو امام 12 امو فرمودن فرمودن که افرادی که در اون دوران هستند این ویژگی ها رو دارند که وان من دینهم الورع والعفاف و از اصلیشون برای از افت از صدق الصلا هست. هست استقامت است اجتهاد است و ادا الامانه ال البر الفاجر اداي امانت میکنن حتی به دشمنانشون که خیلی تو امانت داری صریحا روایت داریم که حتی اگر دشمن شما اومد امانت به شما بده شما امانت رو بهش برگردن امانت داری استثناء شده حالا و غیره و غیره و اجتناب المحارم و انتظار الفرج صبر انتظار فرج میکشن با چی با صبر کردن صبر میکنن حضرت انتظار و فرج رو معنا کردن برا ما خب حالا عرض ما اینه گای اوقات انتظار و فرج رو برای ما بعضیا وارونه هم تعبیر میکنن و ترجمه میکنن ببینید انتظار و فرج رو تو فرمودند که معنا انتظار فرج صبر است بله ما یه موقعی حالا مثال میخوایم بزنیم مثلا میگن که آقا کسی که میزبانی که مخواهد مهمانی برایش بیاید چه میکنه محیا میشه، آماده میشه. خانه رو آبرجاریو میکنه، مرتب میکنه، میوه میآره، آقا برای آوره، شیرینی میآوره. بالاخره آماده میشه برای اینکه انتظار میکشه برای این می برای مهمان عزیزی که میخواد براش بیاد. این رو بهش میگن انتظار کشیدن. و این کارها رو انجام میده. این درست اما ها میان یه تته بهش اضافه میکنن. میگن خب این میشه حالا تکلیفی که ما داریم انجام میدیم. اما تته چیه؟ میگن اگر این کارها رو انجام دادی انتظار فرج چیه؟ تو رو میرسانت به فرج. این اینجور نیست، انتظار فرش یعنی صبر کردن، اون چیزی که شعون تو انجام بده اما اون چیزی که شعون تو نیست، شعون امامت کاری به شما نداره یه سری امور شعون خاصه امامت هست، شما صبر بکنید. مثالش بزنن مثلا یه شما در یک کسی، حالا اجلکم الله و یانا و جمع شیعه یه کسی مثلا بیمار بشه، ببرداش بیمارستان یا تصادفی بکنه، خب میگن آقا صبر بکن دکتر میاد بالا سرش مثلا عملش میکنه دکتر بیاد مثلا فلانجاش رو قلبش رو دستش پاش، عمل بکن دست بهش نمارد بذاری حالا من میگم نه آقا من برم جای دکتر مثلا یه وری بهش برم یه کاری بکنم شاید بتونم اینجور آقا تو عرض بری دست به این بذاری اینو یا قطع نخاش میکنه یا رکه رو بیشتر قطع میکنه یا خون ریزی میکنه بالاخره مشکلات چند برابر میشه. اون چیزی که به شما دستور دادن گفتن صبر بکن تا چی تا اون کسی که صاحبش هست دکتوری که هست پاش بیاد و این رو درمان بکنه انتظار فرجم یعنی این یعنی اینکه من کاری که به وظیفه به عهده خودم هست رو انجام بدم از اون طرف منتظر باشم در اون چیزی که وظیفه امام است یعنی که برم تدا تدخ... دخالت بکنم در شعون امامت در شؤون امامت دخالت نمواد بکنم صبر بکنم ما اوقات به بعضی از رفقا و اینها که عازن هست است میگم بعضی از ما میگیم که بله امام غائب است اما حضور دارد اما ما رو میبیند ما رو ادراک میکند یاکل یا ربی یم شیف الاسواق لطفش به ما میرسد همین ها رو میگیم اما انگار واقعا به این عقیده نداریم یعنی امام غائب رو واقعا مثل عدم الامام تصور کردیم فکر کردیم امام نیستش واقعا دستش هم دسته دسترسی هم به چیزی نداره، فیزش هم از ما منقطعه علی یعز الله، و خودش هم دست و پاش اساس نمیتونه کار بکنه. بگیم خب حالا ما بیام کاری که امام نمیتونه بکنه انجام بدیم. نه. امام هست، زنده است، حی است، حاضر است. فیزش مدام داره به خلق میرسد، به عالم تکوین میرسد، به ما میرسد. همه این فیوضات هست، فقط من نمیبینم امام رو. مثل یک حاکمی که فرض بفرمایید. مثل یک حاکمی که من دسترسی به این حاکم ندارم. میگم آقا من میخوام برم حاکم رو ببینم. حالا میگم نه آقا نمیشه. من میگم نه چون من نمیتونم همه حاکم ببینم پس حاکمی نیست مثلا وجود دارد. نه تمام آلم همه تکمین در تحت امر امام داره مدیریت می شود من دسترسی به امام ندارم حجابی هست بین من و امام امام هست حاضر است خب من چرا بیام تدخل بکنم در شؤون امامت نه خب حالا انتظار فرج رو باز در همین روایتی که گفتیم بیفرمایت که باز در روایتی دیگری میفرموند که مالکم لا تملکون انفسکون و تصبرون حتی آیجی الله تبارک که و تعالی بلذی لذی توریدون حضرت اتاب میکنه شیعه رو بعد نعمانی وقتی این رویتاره میاره خیلی با ناراحتی و به صورت مشفقانه شروع میکنه توصیه میکنه میگه ای شیعه ببینید که عیمتون چقدر دلشون برای شما میسوخت اما شما نمیدونید که چکار بکنید حضرت اتاب میکنن این فرمانه که ما احسن از صبر و انتظار الفرج چقدر خوبه که صبر بکنید و انتظار بکشید صبر کنید خب فعليكم به سبره فإنهو إنمایجی الفرج علالیه صبر بکنید اون موقعی که از همه چیز ناامید شدید فرج میرسه براتون باید به ناامیدی مطلق برسید اون موقع فرج میرسه وقت کانال لذی من قبل کم اصبر من کم اونایی که قبل از شما بودن سبرتر بودن سبر نمیکنید؟ بعد ازت ادامه می میفرماواد مالککم لا, تنف... تم... لا تملكون انفسکم چرا خودتون رو حبس نمیکنید چرا صبر نمیکنید زر صبر ندارید تحمل نداری تا هر جا ندای میشه صدای میشه یه... کسی میاد تطبیق میکنه علایمی میخواد تطبیق کنه ادعایی میکنه هر چیزی تا اینکه امر الهی مقدر بشه ان هاذ الامر ليس یجیع علی ما یرید اون چیزی که شما میخاید نمیشه این امر امام علی علیه السلام و امر ظهور حضرت یا امر حکومت مؤهلین به خواست شما نیست اون چیزی که شما دوست دارید نیست بفهمیم اینو چقدر انم تأکید کرد. انما هو ماجرم. ببخش اینو تکمیلش کنم انما هو امر الله تبارک و تعالی و او و صبر این امر خداست قضا الهی و صبر باید تسلیم امر خدا و قضا الهی و صبر کنید صبر کنید تا زمانش برسه ببینید ما می میکنیم اون چیزی که وظایف ماست همه ایناست که داریم میگیم داریم میگیم وظایفمو رو گفتن وظایفی داریم میگینم باید به وظایفمون عمل کنیم اما یه چیزی که وظیفه ما نیست چرا در اون دخول بکنیم چرا خودمون رو به زحمت بیاندازیم و دیگران رو به زحمت بیاندازیم و خودمون رو هلاک بکنیم با اجالامون و تقریچمون تطبیق هامون رو صبر نکردنمون رو پس ببینید میخوایم بگیم انتظار فرج همچین معنایی رو داره در بدن انتظار صبر است صبر معنای انتظار دیگه ظاهر معنای یا کاملا وارونه میاد انتظارو وارو انتظار معنا میکنن میگن انتظار یعنی چی یعنی شما بده همه کار بکنید مثلا دنیا رو به هم بریزید عالمو به هم بریزید نه انتظار صبر است در بدن انتظار صبر خوابیده است بفهم ببخشید خواهش, خواهش میکنم اتفاقا سوالم راجبه همین بود که فکر میکنم عنوان بحث که هست وظایف شیعه در عصر غیبت حالا موارد متعدد رو گفتید این دهامین مورده انتظار فکر کنم که مثلا برای مخاطبین بگن آقا وزایف شیعه در عصر قیبت شیعه اولین چیزی که به ذهن میرسه همین انتظاره خب شما حالا نکات مهمتری گفتید مخصوصا مثلا اون چند مورد اول تمستا کبال اول یعنی اول مسئله اعتقادی حالا بعدن میشه توضعی وزایف و اینه این انتظاره خب همه میدونیم باید منتظر باشیم. نکته دقیقی هم که فرمودید این بود که انتظاره در دل خودش یه صبری داره. مثلا با صبر معنا پیدا میکنه. غیر این صورت بود بعد از دوران غیبت صغرا مثلا اگه بخواست فرمودید بخواست شیعیان نیست بخواست خداوند و امام زمانه اگر شیعیان بخواست شیعیان بود 50 سال، 100 سال، 200 سال بعد از غیبت مثلا صغرا دیگه میگفتن آقا بیا که خسته شدیم مثلا بود بزرگ خیلی وقت پیش اتفاق میافتد. خب ما چی، ما چی جوری باید باشیم غیر از صبر که ویژگی اصلی انتظاره ما می بگیم ما انشاءالله جزو منتظرین امام زمانیم باید چه ویژگی هایی داشته باشیم بله خب ما عرض کردیم که انتظار رو به عنوان خود نفس انتظار رو به عنوان یه وظیفه معرفی کردیم در مجموعه وظایف و شما فرمودید که این انتظار بازشه ویژگی هایی دارد و انتظار معناشیه و ویژگی ها یک منتظر بازشیه این رو میشه چند عنوان براش ذکر کرد که رو همشم ربایی یکی اینی که انسان منتظر وقتی ما منتظر امام عصر هستیم دائما به یاد حضرت هم هستیم یعنی یاد حضرت و ذکر حضرت و توجه حضرت ویژگی انتظار وقتی انتظار چیزی رو میکشیم به بیشترین چیزی که فکر میکنیم همون منتظرمونه و اون کسی که داریم انتظارش رو میکشیم خب این توجه به حضرت با چند مطلب قابل دسترسیه با دعای برای حضرت دعای برای سلامتی حضرت مثلا دعای اللهم کل ولیه که صبح و شام انسان دائم بخانه و میدونید که این دعای اللهم کل ولیه باز این رو من عرض بکنن دعای اللهم کل ولیه که به دعای سلامتی امام عصر محروفه است این دعا اختصاص به امام زمان ندارد. یعنی شما ببینید در کافی شریف، اصحاب میان محضر امام صادق، امام صادق میفرمان که امامتون رو دعا بکنید این چنین خب در اصل متن دعا لذا وقتی شما ببینید در کتب مختلف، در کافی، در تحریب، در الفقیه ش همه اینها اینچنین آمده است. اللهم کل ولی که فلان ابن فلان که علیه و علی آباء. یعنی چی؟ یعنی در اصل دعا حجت ابن الحسن نیست. اهل هر زمانی امام زمان خودشون اینجوری امام خودشون اینگونه و این یه اسبابی برای توجه به امام بوده لذا کسی که زمان امام صادق بودن میگفتن اللهم کل ولی که جعفر ابن محمدن صادق صلواتش که علیه و علی اوافیادر سعاده فقلی صح میگفتن اینا امام کاظم همینطور امام رضا یه دعای بوده است که برای توجه به امام در هر زمانی بوده است زمان ما میگیم کی حجت ابن الحسن خب این دعا رو انسان بخواند دعای و زیارت هایی که برای حضرت هست زیارت‌های خاصی که برای حضرت هست که خب خیلی مشهور است و از خود حضرت و نواب حضرت رسید از مثلا مثل همه زیارت آلیاسین یا دعای عهد که باز از نواب رسیده است اینها را انسان بخواند تجرید عهد کنه زیارت کنه دعای برای سلامتی حضرت دعای برای فرج حضرت اینا یه مسئله است مسئله دوم همون جهت افزایش معرفت بود که به عنوان دهم ده گفتیم افزایش معرفت معرفتشو به امام زمان بالا ببرد و دیگران رو هم نسبت به معرفت افضاحشون تلاش بکنه عنوان سوم که میشه گفت و بسیار مهم است این است که انسان منتظر ناامید نمیشه عدم و است این خودش عنوانی تو رواید همون روایت عبی خالد کابولی هم که عرض کردیم حضرت این رو فرموده بودن توش که انسان ناامید نمیشه انسان منتظر هر چقدر منتظر باشه باز میدونه که این وعده الهی وقتی خصوصاً وقتی منتظر وعده خداست که فرمودن که در همه چیز احتمال بدع هست که راوی یک از حضرت میپرسد امام جواد علیه السلام میاد میپرسد علی عبد الله الف المحتوم؟ قال نعم قال علی عبد الله السفیانی قال نعم قال علی عبد الله الف مختوم حضرت فرمودن قال نعم قال علی عبد الله لله في القائم حضرت فرمودن لا ان القائم من الميعاد لا يخلف یعنی حتی در محتوم امکان بدا هست و این روایت حالا بحثش مفصل تو علائم و ظهور به احتمال بدا در علائم یا نه علمان مفصل بحث کردن محروم علام مجلسی تحلیقهای خوبی دارد اینجا این روایت حاکم است بر تمام روایاتی که حتی محتوم رو معنا میکنن یعنی بخواد بفران که حتی محتوم بودن به معنای نفی بدع نیست حتی اگر ما معنای بدع رو درست فهمیدیم حتی محتوم بودن هم به معنای نفی بدع نیست چرا؟ چون بدع ناظر به قدرت الهیست مادامی که خدا قادر است و قالت اليهود و ید الله مغلوله قلت ايديهم و به بما قالو گفتن دستان خدا بسته نه بسته نیست خدا هر لحظه اراده دارد و هر لحظه قدرت دارد مادام این که خدا قادر است و می تواند و اراده دارد و می تواند اراده کند بدا هم امکانه تحققش است اما یه جایی خدا وعده دارد خود خدا گفته است که من خلف وعده نمی کنم الله لا یخلفون میاد خلف میاد نمی کنم کجا فرمود از قائم است چون وعده داده است دیگه خلفه میاد نمیشه خب چیزی که خدا می رو داده من نامید نمیشم همیشه منتظرش هستم از سراغ من نمیاد پس اینم به معنای انتظار ده. یکی دیگه اش امید به درک ظهور حضرته که گفتیم ما گفتیم در دوایات میفرماون که شما اگر درک کردید یا نکردید یکسانید اما خب بالاخره من همیشه منتظرم و امید دارم درک کنم حضرت رو دعای عهدی که میخونم همینه میگم خدا من درک کنم و حتی امید به درد دارم اگرم هم وارد کردم چیه بعد از رجعتم بیام درک کنم و نصرت کنم حضرت امید به نصرت حضرت امید به همراهی با حضرت و دعا برای نصرت و همراهی حضرت امام علیه السلام و سلام و دیگری باز در معنای انتظار که همین روایت هایی که مخصوصا خوندیم و خصوصا همین مثلا روایت امام رضا علیه السلام و سلام که یکی از ویژگی های منتظر این است که انسان منتظر صبر کند در مشکلات، سختی ها، شدائد شیرینی درک حضور امام و رسیدن به محبوبش باعث می شود که همه تلخی های قبل از وصال رو چکار بکنه انسان منتظر همه رو تحمل میکنه و به جان می خرد به خاطر اون که اون شیرینی و اون حلاوت رو بچشه. فقط आवाज من یه نکته ای دارم. عرضم به خدمتتون که این ویژگی هایی که فرمودید این ویژگی باز همه شخصی و فردیه یعنی میتونه آدم توی خانه خودش فقط مثلا تو خلوت خودش هم دعا برا سلامتی همزمان بکنه هم ارزم به خدمتتون که مدام یاد حضرت باشه تو جامعه بالاخره انا تو جامعه داریم زندگی میکنه حالا اونایی که تو ایران هستن تو عراق هستن مثلا تو کشورهای همسایه هستن توی جامعه اسلامی یه نفر نداره زندگی میکنه توی جامعه غربی مثلا دوروبرش مسیحیان یعنی نمیره محل کتابانی یا هر دین دیگه ای. من بخواهم میگه من منتظرم منتظر امام زمان هستم علاوه بر اون حالات روحی و شخصی که نسبت به امام عصر دارم باید دیگه چی ویژگی هایی داشته باشم تو جامعه مثلا تو امورات روزمره حالا اون بحثایی هم که بود هفته گذاشتم فهم بود مثلا اونه که مستجلن مثلا بخواهم برن یه کاری بکنن که امام زمان بیاد خب ما یه سری کارا نهی شدیم ازش اما غیر از اون تو حوزه جامعه تو بین مردم در بین خانواده باید چه جوری باشیم که ویژگی‌هایی داشته باشیم میخوام مثلا یه نمونه بگم باز از همین رباتی که خودتون تو بخش اول برنامه فرمودید روایتی که راجع محزل ایمان بود از حضرت رضا سلام الله علیه در مجلس معمون که مثلا اونجا گفته مثلا یکیش امانت مثلا خب این ویژگی‌های اینجوری عمومی و اجتماعی رو اگر مثلا تو برنامه دارین بفرمایید ببینید ما وقتی در برای زمان غیبت صحبت کنیم، اهل برای خود این دوران امور خاصی رو دارن, دارن بیان می‌کنن یعنی شما که در دو دوران غیبت هستید به خاطر نبود امام و غیبت امام شباهات دوران امام یه امور مازاد بر بعضی که در دورانهای دیگر بودن ممکنه لازم باشه شما بهش اهتمام داشته باشید مثلا همین انتظار فرج کشیدن مثلا تمسک به امر اول خب دسترسی نداری ک ح اماک اینا چیه؟ ویژه که که مال دوران غیبت حضرت اما اونچه که وظائف عمومیشی است و وظایف عمومی یکی مؤمن است این دیگه از زمان بیم بر اگر اممی مؤمین تا زمان غیبت حضرت و تا دوران غیبت همه جاری یعنی من وظیفه امانتداری حالا در دوران غیبت حضرت بله این هم هست اما وظیفه من امانتداری است وظیفه من نشر علوم اهلبت هست که حالا رواتش خوندیم دیگه نشر علوم اهل بیت است وظیفه من انقاذ ایتام است وظیفه من دعوت دیگران و جهال به امر اهل بیت است کسی که جاهل است به امر اهل بیت دست او رو بگیرم نجاتش بدهم. هم وارد در امر اهل بیت و دین اهل بیت بکنم او را همه اینا همین, همین که کار ما داریم انجام میدیم خداوند کی دارید یه سری وظایفی که مثلا ممکنه من به عنوان شنونده و مخاطب انتظار داشته باشم که اجازه حجازه بگم مثلا وظایف شیعه در عصر غیبت اینی که خسن خرق داشته باشید نمیدونم امانت باشید دستگیری بکنید از ایتام شما میفرمایید این وظایف وظایف شیعه است در همه زمان که بوده بله ما داریم درباره یه ویژگی های صحبت می‌کنیم بله مازاد, مازاد و اضافه بله ما که خاصتاً در دوران غیبت هستیم یه وظایف خاصی داریم برای اینکه نجات پیدا بکنیم از این دوران فتنه های دنیا یعنی علاوه بر حسن آمان. خلق امانت داری یا هر دیگه مثبتی که در روایات آمده علاوه بر اینها چون در عصر غیبت هستیم باید بیشتر یاد امام زمان بکنیم باید مدام برای سلامتشون دعا بکنیم باید ناامید نباشیم از عصر از ظهور حضرت و باید امید داشته باشیم به درک زمان ظهور حضرت اوجاده باز من یه روایتی در تته و این بحث انتظار بخونم و بحث رو جمع کنیم. روایات باز زیاده. در کافی شریف و مرحوم نعمانی هم از خود کلینی نقل میکنه. خب میدونید که از روات کتاب کافی شریف هم خود مرحوم نعمانی است. و خیلی از روایات کافی رو که مربوط به امام اسوده است، نعمانی هم آورده است. خب میفرماید که قلتو لعبی عبدالله علیه السلام عبی بسیر. خیلی جالب روایاته. امام ابی بسیر صاحب سر حضرت اصحاب خاصه روزه. میگه به حضرت گفتم که جعل تو فداک متا الفرج کی فرجتون میشه این فرجی که شما همش میگید فرج کی میشه حضرت فرمودن و انتم من یوری دو دنیا تو دنبال دنیایی حالا میخوان تعنه بزنن نمیخوان تعن بکنن زم بکنن عبا رو میخوان به خودش اخلاقا مطلبی رو یاد بدن نمیخوان بگیم این جزبه مثلا قدحای رجالی محسوب نمیشه اخلاقا حضرت دارن یادش میدن تو دنبال دنیایی ابوظهیر دنبال دنیایی دنبال دنیا, دنیا نباش من عرف هذا الامر کسی که این امر رو شناخت یعنی امامت مأهلیت و ولادت مأهلیت تو داشت فقد فرج عنه انتباره کسی که این امر رو شناخت با همین انت خیلی قشنگی روایت واقعا دقت بکنه آدم روش کسی که این امرو شناخ، امر رو شناخت امر مأهلیت رو به شناخت و دونس که بعد منتظر باشه با همین انتظار کشیدنش فرض شده براش یعنی چی؟ با همین نفس انتظار فرجه ل انتظاره با همین انتظار کشیدنش براش فرج شده چرا؟ چون میدونه وظیفه چی آرامش میگیره بینید ما یه مفهومی درباره فرج داریم تو خیلی از روارد که فرج آمده است فرج لزومه به معنای زهور حجت ابن الحسن ایمام دوازده هم گایی نیست فرج معنی گشایش به معنای گشایشه گشایش آم ممکنه این گشایش برای ایان و حاصل بشه در یک زمانی ممکنه گشایش شخصی باشد برای من ممکنه ام گشایش گشایشی باشد که خب با ظهور حضرت برای و اهل آلم با ظهور این امام من همین انتظار فرجی که دارم و دعا میکنم مدام برای فرج امام زمان خب اون موعدش مشخصه و نزد خداوند مطال محفوظه ممکنه این آ... این رویی که دارم و دعا میکنم برای فرج به گشایش در امور شخصی من منجر بشه در در امور شخصی من میرسد و غیر از اون اصلا خوری ببینی این حالت رو حالا داریم واسه که من اعظم من, من اعظم الفرج الانتظار الفرج از بالاترین فرج ها خودت انتظار الفرج یعنی چی یعنی همین آرامشی که میگیریم میگه آره من الان وظیفه اون میدونم من باید منتظر باشم همی همین حدیث معروف افضل الاعمال انتظار, انتظار الفرج من میدونم الان باید چیکار بکنم همین برای یه یک شیه از حیرت میام. در میام دقت کردید امید به رحمت الهیه در حقیقت بود دقیق حضرت میگن تو دنبال دنیایی من من یاری دو, دو دنیا دنیایی میخواد مثلا فرج بشه آقا بیام حالا نمیخوام بگیم بله وا بله ما دعا میکنیم که آقا با ظهور حضرت همه مشکلاتش برطرف بشه اعدایش اعدای امام از انتقام از قتله ابی عبدالله الحسینا آرزوی ماست اما میدونیم محقق میشه آرزوی ما هست آرزو ما داریم ببینیم و میدونیم محقق میشه وعده الهی اما بالاخره منی که این آرزوها رو هم دارم بدونم که آقا یه موقعی هم ممکنه برای دنیا خیلی دارم زور میزنم آقا مثلا به منیاری در دنیا مثل ابوباسی امام سال به دنیایی که اینقدر زور میزنی اینقدر ناراحتی گیجی آشفته، چه خبره؟ آرام باش اگر آرام بودی دونستی این امرو حرفها درم شناختی شناخت دونستی مثل حدیث اه... بله اصحاب امام صادق علیه السلام اصحاب امام رضا علیه السلام بود که اومدن اصحاب ملامت کردن و یونوس یونس بن عبدالرحمن یونس بن عبدالرحمن بود حضرت بهش فرمودن که اومدن اصحاب دوستانش از شیعیان بودن اومدن بدگویی اورو کردن حضرت بهش فرمودن که یا یونوس تو وقتی میدونی در, در اون دستت یک درر گوهر گران مایه و یک درر گوهری اگه همه اهل عالم این رو بیا نافری بکنن تو میدونی این یه دوریه در رسه تو ناراحت نمیشی و وحشت برد نمی داره با حرف دیگران با رفت و آمد دیگران شکایت کنن اد ان،, ان ان ان کانا امامو ک عن کراد امام بهش اینجوری فرموده امام رضا فرمودن انکان امامو ک که کرادن اگه امامت از باشه، بشه همه اهل عالم میخوان چی بگن من میخوام بگم انسان لاغالی باشه و با در مورد گفتاره دیگران میخوام میگم که انسان میدونه با آرامش میره میدونه من وظیفه‌م میدارم، انجام میدم نولوژی هم بعد منو گفتن خب فقط فرج عن حال لانتظاره خود همین فرج انتظار کشتن چه باعث فرج می شود این خای میگیم که این ببینید معنای فرج همین امر از از صرف ظهور است بله بالاترین مساق فرج ظهور است یقینا اما بلا برای بالاترین مساق فرج دعا میکنیم همیشه اما بالاخره این ها مصادیق از فرج است دقت فرمودید خب این پس حالا بحث انتظار که خاتمه میدیم همینجا و دیگه وارد روایتش بیشتر نمیشیم. اما نکته یازده عنوان برمان وظائفشیه در اثر غیبت که حالا به همین بحث انتظار هم مرتبط میشه. لذا من بعد از انتظار قرار دم. بحث عدم همراهی با ادعاهای تمهید است. ما بحث مفصلی داریم در مباحث مهدویت به نام تمهید یا زمین سازی. حالا ببینیم این تمهید معناش چیه و آیا درست هست؟ غلط است به چه معنایی درست است و به چه معنایی غلط است ببینید تمهید اولا در لغت به چند معنا میاد به معنای تهییه میاد به معنای تسهیل میاد به معنای علت سازه میاد یعنی محیا کردن یک چیزی به این میگن تمهید به معنای آسان کردن ایجاد یک چیزی به معنای علت سازی شما مثلا یه معلولی هست فرض بفرما مثلا میگه چی میگید که خب میخوام کوزه بسازن برای ساخت کوزه باید علت کوزه رو محیا بکنید چیه گله؟ باید گلی رو آماده بکنید که بعد بدید دست کوزه ساز کوزه بسازد این علت و معلول است بگید میگن تمهید اون علت سازی رو میگن تمهید محیا کردن علت میشه تمهید لذا تمهید علت و مع... در تمهید علت و معلول کاملا به هم متسلم یعنی یک کاری علتی است برای وقوع یک فعلی و یک معلولی یه معنای از تمهیده که معنای لفظی و لغوی و اسطلاحی تمهید همینه یه معنای ممکنه کسی بکنه بگه نه آقا ما من منظورم از تمهید این نیست منظورم از تمهید آمادگیه یعنی چی؟ همون مثال مهمان و میزبانی که عرض کردم میزبان میدونه میخواد مهمان بایش کرد مهیا میشه میگن چی تمهید مهیا شدن؟ من اسباب رو نمیخوام فراهم بکنم. من ادعا نمی کنم که من اسباب او رو دارم فراهم می کنم. نه، من خودم رو مهیا می کنم. می تمهید رو آمادگی معنا بکنیم یا آماده سازی؟ آماده سازی. بله. من خودم اینجا دارم مهیا می شوم. و باز مثلا مثال دیگه فرض بفرمایید که میگن آقا شما باید همیشه آماده باش باشی برای زلزله. میگن چی؟ میگن آقا اگه زلزله شد شما باید آموزش هایی رو ببینید اگر زلزله شد چیکار کنه؟ چه پناه ببره؟ به کسی که زلزله دیده کمک بکنی، امداد بکنی خب ببین این آماده کردن مهیا شدن برای زلزله است اما من زلزله رو ایجاد نمی‌کنم من تمهید زلزله نمی‌کنم من نمی‌دونم من باید آماده باشم بالاخره ممکنه امسال زلزله بیاد ممکنه ده سال دیگه زلزله بیاد ممکنه تا آخر عمر منم در جایی که زندگی می‌کنم زلزله نیاد اما من باید همیشه مهیا باشم برای زلزله دقت کردید یه واقعی که میخواد رخ بده من باید همیشه مهیا باشم که اگر این واقعه رخ داد من با یک فجعه مواجه نشم و من مثلا ندانم که چه بکنم و جزء کسانی باشم که یک عکس عمل صحیح یا غلطی نشون میدهن من بدونم پس من بعد خودم رو مهیا بکنم حالا اون فعل که رخ میده نمیدونم ممکنه اصلا در طول زندگی من رخ بده ممکنه رخ نده پس من خودم رو آماده این معنای برای تمهید اگر کسی بگه خب بله این رو قبول دارم مثل همون انتظاری شد که عرض کردم باش در اصلا تم... یک بخشی هم از انتظار باشه بله بله, بله, بله و همون معانی میخ. ولی بله میفرمایید این بحثی که با این معنا رو از تمهید که بگیم ما یه کارهایی بکنیم که آماده بکنیم میفرمایید این قسمت رو قبول ندارید حالا میاد وارد این قسمت بشیم کسانی که اما ادعای تمهید میکنن عموما این معنا رو اراده میکنن یعنی اون معنای آمادگی رو بعضی حالا برای ترجی هم گفتن یا بعضی مثلا ممکنه در اصطلاحات به کار برده بشه. اما وقتی عنوان زمین سازی مطرح میشه میگن میخوایم زمین سازی بکنیم برای ظهور ازعاد زمین سازی یعنی چی؟ یعنی همین یعنی رابطه علت و معلولی وجود دارد علت و معلولی در ظهور ازعاد یعنی چی؟ ساده بکنم یعنی اگر ما این کار رو انجام بدهیم معلول که ظهور حضرت هست واقع میشود و اگر ما این کار رو انجام ندهیم معلول هم واقع نمیشود دوتش به هم مرتبطه از این تمهیل بعضی‌ها رسیدن به نظریه خودشون هم میگن نظریه نظریه ظهور اختیاری گفتن چی گفتن آقا پس کلا ظهور در اختیار ماست یعنی خدا بله خدا اراده کرد اما خدا اراده کرد خدا اراده کرده است که ظهور بشه ما اینکه نمیذاریم ظهور بشه ما بعد چیکار کنیم ما بعد یه مقدمات رو بسازیم ایجاد بکنیم تمهید بکنیم ظهور در اختیار ماست اساسا امام زمان منتظره فقط همجو منتظر 1100 سال حضرت نشسته منتظر ماست و ما هنوز کاری نکردیم و هیچ چیز دیگری داخل نیست در این غیبت تنها چیزی که دخیل است در غیبت عمل ظهور اختیاری اومن و نظریه ظهور اختیاری و علت و معلولی رو کاملاً به این سبک بردن ما میگیم که نه این معنا غلط است چرا غلط است حالا میام واردش اولن اولا کسانی که میخوان ادعای تمهید بکنن ببینیم دلیلشون چیه خب اینا در مقام اثبات هستن در مقام ادعا هستن میخوان چیزی رو منتسب بکنن به دین دیگه آقا دلیلتون چیه یا دلیل نقلی و بیان یا عقلی دلیل نقلیشون صرفا یک روایت ما هیچ روایتی در این مجموعه وسیع روایات مربوط به مهدویت از علاقه ظهور از ملل و, و فتن ببخش از روایات ملل و فتن از روایات از شما که ویژدی های دوران و غیبت هر چی که شما بگید ما فقط یک تقریرات یعنی حتی کسانی که من تو بحث تمهید مطلب و ما همه رو خوندیم حالا من مطلبی هم مفصل نوشتم تو این موضوع والا کتابیه انشاءالله شاء الله خدا بخواد چاب بشه اما خب اونایی که استدلال کردن صرفا یک روایت اون روایت چیه روایت یک خبری در سنن ابن ماجی قزوینی این خبر اصلا خبر عامیه و سند هم سند ضعیفه رجال اینا عامه خودشو اعتراف آقا این سند سند ضعیفه ونا تضعیف کردن مثلا اصلاً این روایت همین تو منابعی این اصلا شیعی نیست هیچ منبعی شی این روایت وجود نداره بله مثلا بعضی هم اومدن همین رو از ابن نقل کردند اینم اومدن مثلا مجموعه روایات مهدوی رو جمع کردن مثلا از منابع شیعه بله. آوردن روایات از سنن ابن ماجه آوردن بله مثلا هایی که در مجموعه روایات مهدویات جمع شده خب روایات آمرم آوردن دیگه چون خواسته مجموعه رو جمع بکنه مثلا معجم احادیث امام مهدی هم سنی رو آورده هم شیعه رو آورده در مقام بیان صحت و عدم صحت نیست خب روایت میگه که قاره ابي عن عبد ابن قال, قال قال رسول الله از پیغمبر یه رجناسون من المشرق یوطعون للمهدی یعنی سلطانه کل روادی یه مردمی از مشرق خروج میکنن که یوطعونه توطعه یعنی وطعه به معنای همین تمهید مقدم سازی ایجاد میکنن تمهید میکنن برای مهدی برای امام ازشی رو سلطانه سلطانشو حالا این یعنی سلطانه باز معلوم نیست که مال خود روایته یا مال راویان هست چون راوی. اصلا یعنی معمولا تو روایت نمیاد که مثلا حزرت بگن که مثلا حزرت باید بگهن یو وتاون للمهدی سلطانه اینجوری بگن اما حزرت میگن یو وتاون للمهدی حالا بعد راوی میگه یعنی سلطانه حالا میگیم آقا این خبر خبر عامیه برای ما یقینا حجت نیست در اعتقادات و حتی در احکام شرعی و حتی در اخلاقیات علامه امینیسی مفسر رضوانو گفتند واقعا علامه امینیسی یه شخصیتی که وقتی یکی از بزرگان می‌فرمون گفت دشمنی با الله مجلسی به معنی دشمنی باشی است عجیبه علامه ملسی و سلام خدا بر مرحوم علامه ملسی که به شدت بنده علاقه‌مندم نام علامه هم یاد شرف میگیره من ایشون مرحوم علامه ملسی هم باز وقتی میرسن به اینجا همین رو می‌فرمون میگن این خبر خبر عامیه و متفرده خب یا وقتا اون مهدی سلطانه میان برای امام عصد چکار میکنن؟ سلطانش رو محیم حکومتش رو زمین سازی میکنن پس این اول خبر عامیه برای ما حجت نیست و نکته دیگر این که دقیقه همین رو ما دوتا معنا میتونیم بکنیم یه موقع میتونیم بگیم حضرت دارن خبر میدهند پیغمبر اگر بخوایم بحث دلالی هم بکنیم دارن خبر میدهند به یک واقعی یه موقع میگیم دارن وظیفه رو تعلیم میکنن. اینجا در مقام اخبار میتونه باشه، هم اخباره. یعنی چی؟ یعنی مثلا ما میگیم چی؟ میگیم آقا قبل از ظهور امام عصر وقایع اتفاق میفتن سفیانی میاد. دارن خبر میدن دیگه سفیانی میاد. و از علاقه محتوم هم هست که قبل از سفیانی امام زمان مثلا نمیاد. درست شد؟ خب. میگیم چی؟ یکی ممکنه بیاد بگه آقا خب میاد، پس ما بعد بریم سفیانی بشیم. یا حتی, حتی جهت مثبتش اگه آقا چیه قبل از ظهور حضرت حالا اگر گفتیم جزء محتومات از یمانی قبل از ظهور حضرت یمانی میاد که خود محتوم بودن یمانی قطعی نیست ما دو تا راه رو باید داریم که اشاره میکنه یمانی منل محتوم اما در هر دوش اختلاف نسخه وجود داره حتی محتوم بودن یمانی جزء قطعیات نیست برام به هر حال اگر گفتیم یمانی محتومه میاد بگه خب آقا یمانی منل محتوم است از مقدمات ظهور است پس من برام یمانی بشم بیام ادعا بکنم من یمانی امو لشکر تشکیل بدم برامو تا زمان القای وظیفه بتونه کرده که داره خبر میدهد که اتفاقی میافتد که منتهی میشد به زور امام است اینجا همین میتوند اخبار باشد اصلا میگن یه عده میان که اون عده کار میکنن حالا اون کار چیه؟ یه خروجیناس رو مشه یه مسیر رو محیاب میکنن یه کارهایی انجام میدن که چی این منتهی میشد به امام مهدی و سلطان هزم. حکومت امام مهدی خب من نمیتونم که الان من مثلا این مستاقش هستم کسی دیگریه بهتون بخوام بگم که آقا مساقش منم پس من برم مثلا از مشایخ خروج بکنم رايات سود خراسانی که مثلا ابو مسلم خراسانی که اومد مثلا قیام کرد و خروج کرد ابو مسلم خراسانی میگه آقا من مستاقشم میگم نه این نیست این نمیتونه ملاک بشه یوبتعون المهدی سلطان این غلطه پس دلیل نقلیشون بود خیلی ممنون که کماکان بیننده برنامه مهدیار هستی در موزه مهدویت و به ویژه این چند جلسه که خدمت واژهای حجازی هستیم وظایف منتظران در اصر غیبت موارد خیلی مرتب و دقیق و دستبنده شده ای را واژه‌ها صحمت کشتن و از روایات استخراج کردن تا الان حدود حدوداً کلن دقیقاً 11 عنوانش را عرض کردند عنوان آخری که داریم بحث می‌کنیم بحث تمهید آمادگی زمینه‌سازی در این مورد تا میفرده فقط بله خب گفتیم که کسانی که تمهید رو با این معنای علت و معلولی بیان میکن و میگن ما فعلی رو باید انجام بدیم که این فعل علت ظهور حضرت است و با انجامش معلول که ظهور حضرت است ایجاد می شود میگیم اینها عدل نقدشون که یه خبر عامی متفرد ضعیف و سند بود دلالتش هم هیچ قطعی نبود که بخوایم بگیم که این اثبات می کند یک عمل تمهیدی و مقدم سازی رو برای ما اما دلیل عقلیام یه دلیل عقلی میارم. من خیلی مختصر میخوام نقل بکنم بعضیشون میان میگن که آقا دلیل عقلیمون اینه که غیبت یا علت غیبت خداست و امام زمان یا علت غیبت مردمند اگر بگیم علت غیبت خداست اونها میگن بگیم اگر بگیم علت غیبت خداست خب این اتهامه به خداست چرا چون خدا دوست دارد که مردم هدایت بشن خدا دوست دارد که امام زمان ظهور بکنه خدا دوست که حجتش در بین مردم باشد پس علت غیبت خدا نیست علت غیبت مردمند اینجور نتیجه گیر که به عنوان دلعقلی پس علت غیبت خدا نیست مردمند که علت غیبتند و مانع از ظهورند خیلی هم راجع به این موضوع سوال میپرسن روزا خیلی مبتلا بهه خیلی واقعا دهشت یعنی هم اون بحث زمین سازیه هم اینی که ما الان خودمون آمد تاخیره در ظهور ایشون این القا شده ما علت تأخیر و علت غیبت مردمند بشرا خصوصا شيعيان حالا میفرمایید این نفي شده در روايات یا مثلا دلیلی براش نداریم در روايات بعد ادله روایی حالا وسط بزرم. بحث هم هستیم اما یکی از بینندگان عزیزمون تماس گرفتن ما تماس ایشون رو بگیریم پاسخ شما رو ببینیم و بعد ادامه بحث رو انشالله با هم دنبال می‌کنیم جناب آقای مستوی از ظاهره. سلام علیکم بفرمایید علو آقای موسوی. سلام علیکم بفهمه سلام علیکم خواسته نماشیم سلامت دوشون قربان بفهمه حال شما خوبه الحمدولیم خدمت سید بزرگوارم سلام عرض میکنم علیکم السلام و رح خوشحالم که پسر ما بلاخره اونجا هست و داریم روی ماه شنو میبینیم با سلام. گوشی نگاه میکنم یک کلیپی از شیخ بودول رحمت الله علی فرض کردن که سال 1400 شمسی قمری آقا حکومت به دست آقا امام زمان میافته. من این کلیپ رو الان فرستادم برای دوستان بعد یکی از این روحانیون قوم گفتن آقا این هر کسی در عراق هست مسجد سهله بره در تحویل سال و هر کسی در ایران هست که میتونه رو به مسجد جمع کنان برسونه اینجا بیاد. من تو این چی هستم که من یه عقیده دارم که حتی بهجز خدا من فکر کنم خود آقا امام زمان هم از ظهورش خبر نداشته باشه حالا نمیدونم نظر شما چی هست اگر حاجهات تلفنشون رو به من بدن که من این کلیپ قبلی و این کلیپ رو اگر اون کلیپم داشته باشم با این کلیپ براشون نفتیم که مقایسه بکنه ممنونشون میشن آقای موسوی جان ارزم به خدمتون که کلیپ رو که برای همین دوستان شبکه که فرستادی دوستان برای حاجه آقا میفرستن یا بعد از برنامه ایشالله نشون حاجه میدم بهشون و ایشون میبینن سآلی که فرمودید گفتید آقای شمسی قمری فکر کنم اشتباه گفت 1400 شمسی یا 1400 قمری من میبینم که 14 الان 1440 و چهلو... چندی 1400 آقا 1442 مگه اشتباه نکنم از 1400 قمری که چهل سال گذشتیم فکر کنم منظور شما 1400 هجری شمسی یعنی سال آینده باشه خیلی ممنون که تماس کردید عذرام به خدمتتون هز... که از طریق گیرنده خودتون پیگیر باشید ان شاءالله آقا جو جواب سوال شما رو خواهند داد خیلی ممنون که تماس گرفتید با برنامه خودتون. حاج دو تا سال داشتن آقای از مرحوم بوعلول رحمت الله علیه نقل کردن که سال 1400 سال ظهور امام زمان بله رحمت الله علیه ببینید حالا ما نمیخوایم بحث مصداقی بکنیم از اول ما تو مباحث محتوایی گفتیم اگر هم جای مبحثی رو بیان میکنیم نمیخوایم وارد مصادیق بشیم حالا ممکنی نفری جای نظری داره بحثی رو مطرح کرده یا مباحث علمیه میخوایم بگیم که خره ما در این دوران نمیخوایم این حرف ها رو که تعیین وقت می رو قبول بکنیم حالا اینکه های بحلو دقیقاً, دقیقا چی گفته؟ آره بله کلی رو باید, باید ببینیم سره. اصلش که ایشون مثلا گفته انشالله کنان گفته انشاالله ما زمان همزمان 1400 ظهور میکنه خ خب همین انشالله همه چیز رو حل میکنه انشالله ما زمان امسال ظهور میکنه همین انشالله همه چیز رو حل میکنه دق ور مدید اینا خب خیلی تفیه البته یه نکه هم خدمت های میشیه عزیز که لطف کردن تماس که با برنامه و نظر خودشون رو گفتن و سوال خودشون رو برسیدن هم خدمت همه بینندگان بی عزیز جسالت نباشه اینی که میکنم خدمتون انقدر الان این قطع تصاویر ها جقا و قطع فیلم و تدوین و منتاج یعنی یه کاره عجیب غریبی میکنن باش اون مثلا جلسه که آی بحلو رحمت الله علی خب خیلی معروفن ایشون خیلی بزرگوار بودن و خب این همه ایشون نقل شده من خودم مثلا مثلا با که میشناختمشون و دیده بودمشون ارزان به خدمتون که اصلا ندیدم همچین حرفایی هیچ جا نشنیدم ولی بله قول شما توی جلسه گفتن آره انشالله بشه مثلا اینشالله انشالله رو شما اگر وسطش حذف بکنی و قطب بکنی اون چیزی که اتفاق میفته همون میرسیم به همون کشور که شما تو برنامه فرمودید این نکته ای هم که گفتن فکر کنم تابع همون سال اولشون باشه که سال 1400 آغاز ظهور میکنن یا در مسجد سهله باشه یا در مسجد گفتن مثلا برید اونجا یا برید مسجد اونجا سهله, سهله برید هم... یا مسجد جمکران برید نه ما اصلا چیزی توصیه به این مطالب نداریم میکشید ما دوست داریم موقع تعبیل سال انشالله کربلا باشیم یا مسجد سهله باشیم هر امیرالمومنین باشیم ان با به زودی با کوشایش ان شاء الله عرض ها و رفع همونجا هاج آقا بحث خودمون رو میفرمایید این بحث بله تمهید رو عرض میکردم خیلی مبتلا هاج آقا بله. ما چیکار کنیم که مانع ظهور نباشیم خدای نکرده و یا از اون طرف ما چیکار بکنیم که به ظهور کمک بکنیم یعنی بعضی تصور دیگه حالا بچه‌ای که افرادی که دغدغه دق دین دارن الان نسل جوان خب خیلی کارهای خوبی دارن میکنن میبینید که مثلا یه موقع تو همین بیماری کرونا اون, کس، اون کسانی که کمک کادر درمان بودن همین بچهای بچه بچهای مسجدی بچهای حزب اللهی نمیدونم سیلی اگر اتفاق میافتاد زلزله اگر اتفاق میافتاد تو مجامعه مذهبی تو امور عام المنفعه اینا همه پیشتازن خب ما اگر مثلا بگیم که آقا فقط بشینیم و دعا بکنیم این ممکنه باعث یه رخوتی در نسل جوان بشه و از اون برم این تیس هست که ما اگه هیچ کاری برای جامعهمون نکنیم دوباره مثلا ممکنه ما مانع ظهور بشیم مثلا امام زمان بگه آقا شما مثلا همینا یک مثلا من به چه امیدی ظهور بکنم بارد. این خیلی بحث مطالبه و دقیقیه و لازم دقیق گفته بشه حالا چون شما فرمودید من یه مثال بزنم چون بحث دلیل عقلی رو می‌خواستی مطرح بکنم اما فعلا یه مثال برای فرمایش شما عرضه بکنم ببینید یه موقعی بعضی از این رفقا و دوستان حیاتیه موقع شما یه تاریخ رو درست کردن تو فضای مجازی خیلی هم به شدت استقبار شد و خیلی عصب شدن گروه های مختلف افراد مختلف شخصیت به نام چله عظیم قرن چله عظیم قرن گفتن آقا ما چهل روز زیارت عاشورا بخوانیم و دعا کنیم برای فرج امام زمان به نیت فراج بله ب... پارسال به نیمه شعبان منتجاش بله بله احسنت اون روز این کارو بکنیم تا نیمه شعبان به فرجه فراج زیارت عاشورا بخونیم خب بعضی از دوستان اومدن مقابله کردن. حالا یه ده، یه حدی که مقابله کردن به خاطر اینکه اومدن گفتن آقا اصن این طرح معلوم نیست مال کیه از کجاست کی داره ساپورتش میکنه و بعدم شروع کردن مقابله کردن و اومدن مثلا یه طرح جایگزینی درست کردن به اسم خودشون. حالا مثال می‌خوام مثلا اومدن اسم خودشون و رسم خودشون و مؤسسه خودشون رو زدن زیر کلیپ و آقا بیاد به این عنوان رو کار کنه. بعضی‌ها در عاشوراشم حذف کردن مثلا چیز دیگری گذاشتن. ما گفتیم که آقا این طرح علت موفقیتش این بود که به اسم کسی نبود اتفاقا برای شما همیشه دنبال اسم میگردید همین که به اسم کسی نیست این خوبه گفتن آقا هر کسی هر عقیدهی داره بلاخره شیعه است هر کسی که شیعه است بیاد خالصانه زیاد آشرا بکنه به قصد ظهور و امام اصر قفرمون دید؟ خب این خوبه داره کار انجام میشه یه موقعی توی همین مسیر مشایه اربع یه سری از رفقای ما بودن که من میشناختمشون از دوستان همینجا قمیمم بوده. اینا پرچم‌های کوچکی رو آماده کرده بودند و بزرگ سایز بزرگم داشت. که توش مدام گفته بودن آقا به یاد امام زمان باشید، دعای فرج بخوانید. زیر قبه دعای برای فراش فراموش نشود، قدم هاتونو به یاد امام مهدی بگذارید، بردارید. هیچ اسم و هیچ رسم و هیچ لوگو و هیچ نشد. چرا میگفتم آقا وقتی اینو نداشت، مشخص همه کارو انجام میدن، همه منتشر میکنن. همه میچسبونن پشت کوله پشتیاشون، به قول معروف. این کارو انجام میدادند. ی و آقای اومدود موزه گفت که آقا اینا معلوم نیست از کجاست از کجا ساپورت میشه مقابله کنید نظر اینا پاش گفت آقا خوبیش خوبشه که هیچ منبری نداره هیچ چیزی نداره به خاطر همین استقبال داره ازش میشه حالا بعضی از رفقای دیگه باز یه جوری دیگه اومدن مقابله کردن با این طرز چله عظیمم میگم میگم یکم همینش کارو خوبی رو اومدن انجام بدن به چند وجه اومد مقابله شد یه سری دیگه اومدن گفتن که آقا شما دارید این کارو میکنید اگه بعد نیمه شب زمان ظهور نکنه چی گوش<td>آقا چلهی عظیم قرب این همه شیام هم اومدن مثلا دارن این رو پخش میکنن و منتشر میکنن و مثلا تبلیغ میکنن شاید به چند میلیون نفر کسانی که تو این مثلا تر بله شرکت کردن به چند میلیون نفر رسید خب باز نماز آن ظهور نکرد ما اومدیم یه رو نوشتیم و دادیم همین هم منتشر کردن و اینجوری نوشتیم حالا با بنده صحبت کردن گفتم که اینا رو یه جوری شما پاسخ بده من نوشتم که آقا دو تا حالت داره یا اینکه ما اینکه این طرح رو داریم تشویق میکنم؟ خود منم متنش که نوشتم اسم زیرش نزدم چرا چون قرار کل طرح بدون اسم باشه دیگه یا اینکه این طرحی که, که داره داره برگزار میشه کسانی که دارن برگزار میکنن ادعاشون اینه که آقا اگر این کار رو انجام بدهید امام زمان ظهور میکنه نیمه شهوا این کار ما و دعای ما علت ظهور امام زمان است اگر این کار رو انجام بده امام زمان ظهور میکنه گفتم کسی تو این طرح همچین ادعای نداره کسی نگفته حتما با این کار امام زمان ظهور که بلا فاصله بعد فردا چله مثلا همینجوری همجوری حرفی نزد همچه ادعایی نکرد ولی گفتن چی مثل هر دعای دیگری خود بلده. بلده. مثل هر دعای دیگری ما میگیم چی ما میگیم تو عجبیه میگیم چی میگیم که آقا تو روایت هم ندیدیم میگیم آقا وظیفه شما دعا کردن است اما ممکنه منی که دارم دعا میکنم برای برای شفای مریضام خالصانه‌ام حتی دعا بکنم اما مریض هم شفا بیدان نکنه به هزار و یک علت و حکمتی که خودم بیدانه رو من نمیدانه خالصانه هم دعا میکنه اما مستجب نمیشه خب من بگم آقا میتونم بگم آقا تویی که مریض داری و مریضت شفا نگرفته چون دعا نکردی مریضت شفا نگرفته نه این تهمته به اون شخص دقیق کردی خب همین حرف رو نمیشه بیشی اهم زد که بگیم آقا شما ایانی که امامتون غائبه و هنوز ظهور نکرده به خاطر که شما درست دعا نکردی یا شما دعا نمی‌کنی یا شما خالص نه هزار یه علت دیگه در تو ربط زده شده اون علت ها باید مرتفع بشه کیوفته علت اینه علت تام اینه بله فرمودن شما دعا کنید به خاطر دعا شما ممکن مؤثره باشد یک وجهی و یک جزئیتی در چی در تأجیل در ظهور داشته باشه اما که خیلی مثال قشنگی ده یعنی کسی که مثلا یه مریضی داره انواع اقسام دعا رو میکنه، نذر میکنه. مثلا تو ایران همه پیش اطباء مشهور میبره بعضی خارج از کشور مثلا میگن تو انگلیس یا آمریکا فلان دکتوره فلان بیمارسانه همه این کارا رو میکنه تو اون مدتی که این مریضش هنوز در قید حیاته کمک به دیگران میکنه به ایتام کمک میکنه اما در نهایت اون شخص مثلا به واسطه حکمت یا علتی از دنیا میره ما بگیم که تو کم گذاشتی مثلا برای مریضت این خیلی مثال قشنگی راجع به این افعال ما در زبانه نه ملامت کنیم اونم تو بجا کسی که مؤمنی رو به خاطر بلای ملامت کنه مثلا بیاد بگه آقا تو که این بلا سرت اومد که لایموت حتی یبتلی به مثل کسی که مؤمنی به خاطر بلای ملامت بکنه نممیره الا که خودش هم به مثل اون بلا مبتلا میشه علیه از الله خب یکی بیاد بگه آقا تویی که مثلا فقیره به یه مؤمنی بگی آقا توی که فقیر این هم دعا میکنی که آقا خدا منو از فقر بده چون ذو خالصانه نیست. آدم بدی هست. این مؤمن, این مؤمن اتباقا اتفاقا این بلا براش ترفیع درجه است. این همه انبیا الهی بلا دیدن چی بود براشون؟ بلای زید و شهر عظیم سید الشارع علیه الصلاه و چی بود؟ بلا برای مؤمنی برای انبیا برای اولیا ترفیع درجه است. نمیتونیم علامت بکنیم بگی چون تو مسجا و نیستی یا دعا خالصانه نمودی یا دعا نکردی. نه این دروغ این تهمته. بس جا این صادقه. ما وظیفه داریم دعا کنیم. و ترغیب میکنیم آقا در چله گذاشتن زیارت عاشورا بخوانیم به امید ظهور حضرت من نمیدونم شاید همین طرح چله ای؟ میتونیم اینو بگیم یا نه میتونیم بگیم آقا شاید همین تهره چله مقداری ولو لحظه ای به تأجیل در ظهور حضرت کمک کرد ولو ثانیه‌ای یعنی مثلا الا یازا بالله نمیخوام مثلا بنا بوده حضرت ده سال دیگه ظهور بکنن آقا این ده سال یک ثانیه جلو انداخت به خاطر همین چله این بده خوبه خوبه یه روز جلو بعدی خود؟ بعد همین که تو قسمت قبلی اشاره کردم اینو جغا. که اصلا بالاترین فرج و بالاترین گشایش امر ظهور حضرت حجت بن حسنه اصلا در کنار این ذکر و یاد حضرت حجت که مثلا کسی مؤمنی چهل روز خب همه دوستان معمولا عادت دارند به مثلا به زیارت عاشورا زیارت همین الله و یا سایر ادعیه و مستحبات اما اینکه که شما خودتو به این نیت مکلف بکنی که مثلا چل روز حتما چله هم آشورا داشت هم همین دعای الهی از من بلا داشت خب این بالاخره ممکنه تو یه سر امور زندگی برای شما گشایشی به اوزید داره احسان. اصلا اصل این اشتغال به عدیه اصل این که فرمودید یکی از ویژگی های منتظران یاد حضرت آدم چل روز ممکنه تو ایام عادی مثلا بعد از هر نماز واجبی مثلا یه دعای فرج بخوانیم یا مثلا یادی بکنیم خب تو این 40 زدن بیشتر یاد حضرت میکنه نفس این کار که خیلی پسندیده و مثلا همین تو حالا مثلا تو زیارات داریم مثلا زیارات سید الشهد اینا داریم که کسی که زیارت میکنن سید الشهد رو خب این برای همه ائمه جاری کسی که زیارت میکنن سید الشهد رو سید الشهد به اون نظر خاص مکند بعد برای خودش برای پدرش برای مادرش برای اجدادش طلب رحمت میکنه طلب مغفرت میکنه بعد در امور زندگیش چه میکنه امام است معدن کرم است مگه میشه من چه روز متوجه امام باشم و حضرت به من نگاه نکنند حالا حضرت هم ظهور نکردند من ادعا نمیکنم اما یقینا برای خود من فرجی میشه بر گشاویشه میشه بعد نظر حضرت به من جلب میشود من چه روز آقا یاد من چه روز اومدم در خونه شما به شما توجه کردم زیارت آشور خونم به این میاد، به این قصد. و یقیناً حضرت نظاره میکنن نگاه میکنن نظر لطف میکنن حالا حتی اگر ظهور هم معجل نشود دقیق فرمودید ظهور هم بلا محقق نشود پس میخوایم مگیم کسی که حالا اون مثال که شما فرمودید تمام این امور یعنی همه خیرات دیگه از دست یک مؤمن ممکن است جاری بشه در امور اجتماعی در امور مذهبی در امور دینی برنامه اجرا میکنه می گیرد، محفل میگیره خرج میکنه اطهام میده هر کمکی به سایر مؤمنی می کند هر امری همه این امور همه اینها وقتی که بله من با این نیت انجام بدم گفتیم گفتیم چیه گفتیم اگه تعمیرو بگیم آمادگی با این نیت انجام بدم که آقا من دارم وظیفه‌ام رو انجام میدم ببین آقا من میخوام به عمل بکنه من میخوام خوام خالصانه انجام وظیفه بکنم اونچه که به گردن من به عهدم هست و چون یک مؤمن است من دارم بهش عمل میکنم خب این یقینا نظر حضرات به من جلب میشه اما ما نمی منیم ادعا بکنیم که این کار ما یقینا چیه منتهی به ظهور می اگه کسی این ادعا رو بکند و بیاد فعلی رو بیان بکند و ادعا بکند که با این فعل ظهور محقق میشه، شه چی می اون معنای غلط و باطل از تمهید که حالا گفتیم اون مثلا نظریه ظهور اختیاری همه رو میخواد القاب کند که بگوید چی؟ علت عدم ظهور حضرت ما به اینجا رسیدیم بگوید علت عدم ظهور حضرت و علت غیبت چی هست؟ این نکته خیلی ممنون و متشکر ارزم به خدمتون که ما خیلی وقتمون کمه دوستان سوال رو فرستاده بودن من ندیدم یک دقیقه فکر کنم وقت داریم 933-52-23 چهار رقم آخرشون در برخی از روایت معتبر آمده بعضی از 313 یار امام زمان سوال بر ابر می شوند خودشون رو به امام میرسونن رسوند می بدونم منظور از ابر چیه در این روایت حالا ببینید اون چی که در روایات میاد در زمان های مختلف نازل به اقور مردم و فهم مردم در همون زمان بوده ممکنه بگیم که حالا هر چیزی یا تیل ارز حالا حضرت میخواستم میگن تیل ارز مثلا به این عنوان گفتن ممکنه واقعا سوار بر باد باشن ابر و باد باشن کما اینکه که برای سلیمان روخ داد این از لحاظ اعجازی بوعدی ندارد جهت اعجازش اگر فرض بکن برای سلیمان رخ داد و سخنه له ریح و سخنه له سحاب ریحو ابرها رو همرو مسخر کردن خب مسخر امام عصر هم است و این خب در روایت صریح اومده است غير ميعاد ميعاد که یشتنعون به مکه الا غیر میعاد بدون میعاد غزأن که غزأ الخریف مثل های ابر که حالا ظاهرش اینه که روایت میخواد بفرمه که اینها مثل پارای ابری که به هم متصل میشن این هم مثل های ابر آره. همه یک جا به آقا یه سوال دیگه هم هست فقط فرصت اون خیلی کمه می‌خواستم بدونم آیا روایتی که افرادی مثل علی ابی حمز، حمزه و پسرش و سهل بن زیاد از ائمه درباره امام زمان روایت کردن یا در موضات دیگر با توجه به ضعیف بودن این افراد یعنی علی بن ابی حمزه و پسرش و سهل بن زیاد و البته حجم روایتی که دارن میشه روایت رو پذیرفت مثلا بگیم مبانی رجالی مختلفه اما اون ام چیزی که حالا میشود گفت اصعص هست این است که روایاتی که از این روات در کتب مصادر اصلی امام کافی شریف ذکر شده است و کم هم نیست اینها در زمان استقامتشون نقش شده و کتب اصلی ما کتب اربعه خصوصا اینها از مصادر و اصول اخذ شده است که اونها اصول پالای شده از به امضای ائمه رسیده از به اذن حضرت علی قاضی رفت بله مثلا اون که در منابع اه... در منابع متقدم و منبع اصلی اومده بله میشه به کتب شده است اینها قابل قبول است خیلی... مگه معارضی داشته باشه عرض کنم مگه معارضی داشته باشه بحث تعارض میشه خیلی ممنون و متشکرم خیلی ممنون که برنامه محدیار این هفته رو دیدید اللهم صل على محمد و محمد و عجل فرج.